بسم الله الرحمن الرحیم کورسی ترویجی مردم سالری دینی نقطه اتصال سیاست با ارفان با ارائه حجت الاسلام دکتر مظاهری و ناقضی حجت الاسلام دکتر طالبی پندشنبه بیست و بهمن ماه سار چارسد ایک اعوه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و صل الله علی محمد و آله الطاهرين. اللهم صل الله علی محمد و آله محمد سلام و خیر مقدم داریم خدمت سربران عزیز و ساتید گرامی نشست کرسی ترویجی با موضوع مردم سالالی دینی نقطه اعتصاد سیاست و ارخان که انشالله محضر هجاری مظاهری خواهیم بود و همچنین از نقطه نظرات آنی دکتر طالبی هم در این زمین استفاده خواهیم کرد که رو کردی که در این کرسی مدنظر هست با توجه به اون مطالبی که مظاهری هم آماده فرمودن بحث مردم سالاری دینی رو با یک نگاه دیگری با یک مدخل دیگری انشالله بحث بشه از نوع شروع جایگاه خود انسان شخصیت انسان اختیاری که انسان داره و بود اجتماعیش و یک ارتباطی بین بحثایی که مردم سالاری دینی در مباید سیاسی و حکومتی مطرح میشه با مباید عرفانی و انسان که این رو کرد و رابطه بشه شکلی هست خب انشاءالله در این جلسه با خود به زمانی که داریم حدوداً 20 دقیقه 20 الا 25 دقیقه خدمت آی دکتر مذاهی که خواهیم بود بابت ارائه مطالبشون بعد انشاءالله در ادامه از مطالب آی دکتر طاقبی هم از این زمینه استفاده بکنیم آی دکتر دختمتون <تصفيق> است بسم الله الرحمن الرحیم الحمدل در حرف العالمین و السلام و السلام علی سیدنا و نبینا و عبیقات مصطفى محمد تشکل و حسن حسن و علی احلویت تیبین تاهرین المعسومین لاسی ما بقیه تلاف الارضی زمین از تسلیت این ایام و اینشالله که همه بهره ببریم از روح و نورانیت حضرت معسومینی سلوات دیگه تغیرونی فرمین نماشنا محمد رضا من تینی وقتی که به وجود اومد جمهوری اسلامی توی دعواهای نظری اوایل انقلاب خیلی سیاسی بهش نگاه شد و امام خب که در واقع بناگذار و پایگذار این عنوان بود که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کمتر خیلی برداشته متفاوتی شد که این از کجا اومده و به چه اعتباری امام گفت؟ بود؟ یک گفتم به خاطر تأثیراتی که تو فرانسه بوده یه دوفن دو به خاطر فضای جهانی اینا و توضیحات متعددی که بارها و بارها هم مقام معظم رهبری تحکیت کردن که مردم سال دینی یک مفهوم و یک سازه برآمده از کاملا از دل دین نه از غرب گرفته شده و نه از شرق حتی یه جایی میفهمن که ایشون رو دربایستی نداشتن که به خاطر رو دربایستی حالا یه چیزی رو بگن موقتاً. تر ما باید بگردیم ببینیم که توی دین و اسلام چه منظر نگاهی به مردم و مردم سالاری دینی هست خب خود ایشون بحث بیعت رو مطرح کردن آیاتی رو گفتن روایاتی رو خوندن این قضیه و از منظر فقهی قابل پیگیری و بررسی هست منطقه مسئله بعدی که بهش مواجه میشیم اینه که مردم سالاری دینی تقلیل که پیدا کرده به یک مسئله سیاسی که باز هم توی چند جاییشون تأکید میکنن که مسئله مردم سالاری دینی مسئله انتخابات نیست مسئله انتخاب مسئول نیست بلکه آنها رو شامل می شود بلکه اساساً مسئله حضور مردم است. خب اسلام ابعادی دارد کلام داره ف داره، اخلاق داره، عرفان داره معنویت داره. وقتی که ما، از این منظر میخوایم مردم سالاری دینی رو نگاه کنیم میبینیم که یک معنای خاصی پیدا میکنه مردم سالاری دینی نه نافیه اون یکی نگاه ها نه متزاد و متعارض بلکه متعازد و بعد بعضا تکمیل و تطمیم کننده سایر بحث هایی که پیرامون مردم سالاری دینی رخ داده و قابل مطالعه هست قابل پیگیری هست واظهن مردم سالاری دینی وقتی که ما داریم به یک جامعه ای نگاه می کنیم که برای چه جامعه ای طراحی شده؟ جامعه انسانیه ما در مورد جامعه غیر انسانی که صحبت نمی کنیم در مورد جامعه انسانی فضای سیاست اسلامیه سیاست انسانیه اجتماعات انسانیه. به ما باید یک نگاه الهی فلسفی و معرفت شناسیه اسلام به انسان و اجتماع پیدا بکنیم تا از دل اون برسیم به ببینیم که چطوری میتونیم یک قرائت متكاملتری و یک قرائت چط مثلا از حیثیت جدیدی به مردم سالاری دینی پیدا بکنیم اونجوری که بنده حالا خیلی به اختصار بگم نگاه ما به انسان نگاه موجودی است که اتصال دارد به عالم ملکوت خلیفت الله است بالقوه از روح الاتی الهی نفخت فیه من روحی ترش دمیده شده انسان است با های مختلف انسان تکبودی مادی نیست بلکه بعد مادی دارد بعد ملکی دارد بعد ملکوتی و الهی هم دارد این انسان خب این ابعاد رو دارد الان وقتی که آفریده می‌شود متولد می شود در کدام وضعیت است ملکی یا ملکوتی تبخوای ما پی بریم که ثم رددنافی اسفل صافه به این نتیجه می رسیم که الان تو اون حالتی هست که باید تی،, تی بشود تی بکند یعنی از این می خوام این نتیجه رو که درسته ممکنه برخی هم به این اعتقاد داشته باشن که انسان ابعاد ملکی دارد و ملکوتی دارد ولی مسئله این است که همینطوری فعلیت ندارد ابعاد ملکوتیش ابعاد مجردش باید این رو برسد یا طی بکند یا سیر بکند یک سیرورته یا نه همون سیر با سین حرکتی بکند سلوک بکند به عبارتی. وقتی ما از منظر عرفان داریم به انسان نگاه میکنیم و معنویات میگیم که مراتب باید طی بشود مراتب وجودی انسان قابلیت دارد کلاً عام بلهم ازل باشد یعنی از جهت وجودی و قابلیت دارد از ملائکه بالاتر باشد خلیفه الله باشد و در آن مراتب باشد یعنی یک پهنه بسیار بسیار وسیع از وجود رو قابلیت دارد که شامل بشه و این انسان باید این مسیر را طی بکند مسئله اینجاست این طی کردن هست این حرکت کردن است خب آیا همه انسان ها قابلیت دارند که این را تیبه کنند؟ همه انسان ها این قابلیت رو دارند؟ میگیم بله یعنی چی؟ یعنی این انسانی که آفریده شده و ما از منظر اسلام داریم بهش نگاه میکنیم از پایین ترین درجات خلقت تا بالاترین درجه خلقت قابلیت دارد تیبه کنند یعنی چی؟ یعنی این انسان استعدادی دارد بی نهایت یک استعدادی دارد عجیب که قابلیت بروز و ظهور این استعدادها را تا جایی دارد که دیگر رنگ و بوی کاملا الهی بگیرد اون یادم رفایی از اون که میه ادنا باقا سنگ لذا این انسان استعداد عجیبی دارد خب همین که خداوند متعال این استعداد رو داده به انسان که به این مراتب بالای کمال برسد به این مراتب بالا برسد و بالای قله وجود قرار بگیرد موجود موجودات قرار بگیرد و همه مخلوقات رو تسخیر انسان قرار داده این کرامت انسانه که میگه انسان کریم است، با کرامت هست اون تو هر انسانی میگه نه ان نه اکرامکو اندالله میاد میگه که فکانقا با قوسن و او اتنا اون چیزی که یادم رفته یعنی تا اونجا میتونه بالا بره یه کرامت یه برای انسان میتونه خلیفت الله بشه <تصفح> میتونه خلیفت باشه من خلیفه الله شد این خلیفه الله شدن اینکه میتواند تا درجات بالای قرب الهی بره این کرامت انسانه اینکه در حالتی قرار گرفته است که بهترین حالت است یعنی که میتواند تا اون مراتب برد استعداد بی نهایت که خدا داده چرا چون خداوند بی نهایت و هرچقدر در این بی نهایت ما ورود بکنیم این استعداد رو داره انسان که رشد و تعالی داشته باشه این که همه عالم مسخر انسان شده این قرات سخر الک ما فی السماوات و ما فی دیگه این بازه است که دیگه هر چی که در آسمان ها و در زمین هست تسخیر انسان است خب الان که میبینم من اگه همین آب رو نخورم میمونم مراد این انسانی که تونسته به اون مراتب عالیه برسد طی کنه به اون کرامت مورد نظر الهی برسد خب این کرامت رو بخواد برسد چطوریه میگیم تقوا ان اکرمکم اند الله اتق تقویه چجور فرایندیه چجور به وجود میاد میگیم خوب یعنی چی؟ یه نفر متقیه یعنی دائما مراقبت داشته باشه دائما دقت بکنه آن کاری که می کند. نسبتش با تو چیه نسبتش با اراده الهی چیه نسبتش با اینکه آیا این کار خیر است یا شر چیه و بین اینها دائما باید انتخاب بکنه. این هم باید بشناسد علم داشته باشد و با این شناخت و علم چیکار بکند؟ انتخاب بکند خیلی وقت آدم راه افره. راهی که انجام میده کاری که انجام میده رو میدونه غلطه توان نداره جلوش باشه، ارادهش رو نداره انتخاب نمی‌تونه بکنه اختیار نمی‌تونه بکنه اختیار هم لغتاً واضح دیگه این طلب خی... انتخاب اون چیزی که بهتر است خیر است از ریشه خیره متأخرب خب هم علم هم اینکه انسان برود دنبال علم یه چیزی علم پیدا کنه یا نه اختیار کنه و در ادامش عمل کند متناسب با اون انتخاب امتدادش بده طیش بکنه بدو دنبالش اراده بکنه این اراده خودش یک مسئله ایه. که این اراده چیه؟ ما اینجا مسئله قدرت رو مطرح می کنیم. با اراده الهی چیه؟ و اینکه ما اساساً خودمون انسان های در اراده داشتن مختاری یا مجبوری. این هم مسائلیه که بعد دیدیش پس برای اینکه ما انتخاب بکنیم یعنی ما برای اینکه تعالی داشته باشیم برای اینکه سعادت داشته باشیم برای اینکه قرب داشته باشیم و با انتخاب کنیم و اساسا وقتی انتخابی نباشد تعالی هم نیست لذا در فقه هم داریم عمل مکره یا عمل اجباری فاقد هر گونه اقاب یا ثوابی یعنی بالابرنده نیست مصلح نیست ولی وقتی که انتخاب میکنم، حالا میخوام انتخاب کنم میگه با علم داشتی چیو می‌خوای انتخاب کنم سکینی شانس نیست. حالا انتخاب علمم داشتی باید عمل کنی ایمان باشه عمل باشه پشتش عمل صالح باشه می‌گیم خب بر اساس اراده باید این کارو بکنم این اراده الهی الهیه اتکای به قدرت الهیه یعنی قدرت الهی به ما اماده اختیار داده اراده داده که انتخاب کنم در همون توله در طول اراده ایلا به ما داده چرا؟ برای اینکه بتوانیم به سعادت برسیم بتوانیم این مراتب کرامت را طی کنیم در واقع اعتای اراده هم جه در راستای کرامت انسان است. هر چقدر انسان تر، مختارتر شما وقتی که توی مثلا یک زندان خیلی وحشت قرار میگیرید می اونجا طبیعیه که باید نظارت حد اکثری باشه اختیار این آدمو کم باشه چون خیلی خطرناکه ولی وقتی که ما توی محیطی قرار می‌گیریم که همه علما هن، حتی یه نظارت کچیک هم یعنی آسیب زدن به شأنیت اونها حتماً اینها اصلا نباید اختیارشون باید با اختیار برن بیان حضور یابی نشه و جور برن بیان اختیار تام دارن هر ساعتی برن بیان این اون مراتب بالاشون نشون بده کرامت بالا لذا همین قدرتی که خدا اعتا کرده به انسان از همون کرامتی که برای انسان قائل هست منتها برای چیه؟ برای که به مراتب عالی سعادت برسید به مراتب عالیه توحید برسید بتونه اختیار آنچه را که میخواهد پس هرچقدر انسان به مراتب آلیه برسد یک نسبتی پیدا میکند با اراده الهی چطور میشود که انسان به این مراتب حالیه برسد با قدرت خودش، با اختیار خودش، با اراده خودش با انتخاب خودش واضحاً یعنی آنچه را بخواهد که کی خواسته حضرت حق خواسته نه اصلاً آنچه را بخواهد نه آنچه که او خواسته را فقط ببیند یعنی انسان اختیاری بهش داده شده که این اختیار را اعتاق کند به اختیار الهی یعنی اصلا بدهد و برود تحت برحت تحت اراده الهی یعنی اصلا بگه آقا من ای ندارم لسانی ندارم یدی ندارم قدرتی ندارم هرچه هست اوست فنایه درو شود اونجاست که میگن آقا لسان میشه چی لسان الله یعنی انسان مختاراً مطیع می شود عبد می شود مفهوم هویدیت اینجا متولد میشه که با این عبودیت اصلا عبد بودن مخالف با مختار بودن است ولی اینکه انسان با اختیار خودش آزادیش را بفروشد به ازای چی؟ به ازای خود خدا یعنی بگوید خدا من رو آفریده که عبد باشم ما خلطت جن و انس جن و انس الا لی عبدون. یعنی ما برای عبودیت محض محض عبودیت محض آفریدین یعنی هدف خلقت عبودیت عبودیت عبد بودن یعنی چی یعنی تابع اراده مولا بودن ارادمونو مون رو بدهیم توی اون مسیر هر چقدر انسان عبودیت داشته باشد تر است و هر چقدر این طی طریق بشود در مراتب وجودی انسان عبودیتش رشد پیدا می کنه که حتی ارادش هم از خودش نمی دونه توحید در صفات توحید در ذات که فنای در خدا بشه و در تمامی ابعاد که فراتبش رو امام اینجا می فرمندن بیارم بهن. که مراتبی می‌فرماین که من از ان می‌خوام بخونم این موضوعی توضیح امام خوینی فنا را محب استفاد و تعینات عبد این مسئله عبدانیت اینجا بعد خود این که ما چه مقدار این ارادمون رو تحت اراده الهی مندک می‌کنیم این مراتبی دارد، مراتب فنا میشه. که می‌فرماین چی؟ انتفای فعل در مرتبه تقوا و زهد میشه انتفای اختیار در این از یعنی همین که ما بگیم آقا فعل کاری که من میکنم باید همان کاری باشد که خدا گفته نه اصلا هر کاری من بکنم باید اون باشه میشه فنای در مرتبه فعل این که اصلا من اختیاری ندارم ببین این بس شرده های سهر. انتفای اختیار میشه مرتبه رضا یعنی همون چیزی که خدا داده بود که ما انتخاب بکنیم و تسلیم بشیم تسلیم بشیم در این مرتبه مسلم بشیم در این مرتبه میشه فنا در این مرتبه که سلب اختیار انتفاع اختیار اصلا وجودش هم یا تو مرحله بالاتر گفتیم چی شد که ما اختیار داریم باید علمی باشد باید قدرتی باشد همین ها رو که از خودش نفی میکنه تحت علم الهی مندگ میشوه مندرج میشوه خود به خود چی میشه بهش میگن فنا یعنی اصلا یک نگاهیه که ما مختار شدیم که با اختیار خودمون آزادمون رو بفروشیم بریم اختیارمون رو بندیم دست خدا میشه فنا توی مرتبه اختیار کجا میاد؟ اراده از علم از همون رو هم بگیم از خودی اون هم میشه مرتب عالی هست این میشه همون نگاهی که ما به انسان داریم به ماهو انسان تا آیا این تعریف این نگاه این منظر فقط فردیه یا نه؟ این سوالیه که یک فردی مثل امام خمینی و امتدادشون ایشون مقام معظم رهبری حفظه الله جواب میده. و توجه باید داشته باشیم که این انسانی که این انقلاب رو انجام داده اومده این رو چارچوب بندی کرده نه که نبوده از اسلام چارچوب بندی کرده به نام جمهوری اسلامی و مردم دینی این همون انسان فقیه کامل جامل شرایط انسان شناس زمانشناس سیاسیه سیاسی نمیدونم فیلسوف همه بودیه که اومده یک مساله رو طرح کرده برای تعالی یعنی رسوندن نظام و انقلاب اسلام به هدفش گفته چارچوب ما جمهوری اسلامی هم. یعنی جمهوری اسلامی آن شاکله ای است که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی را به هدفش که هدفش چی بود بارها و بارها گفته سعادت انسانسازی به حمل ها برسد خب انسان و سعادت از منسره که ما داریم تعریف کنیم میشه چی؟ یعنی کاملا قرار گرفتن تحت عقودیت محض خدا یعنی این مسیر رو طی کنن خب حالا این که آیا شود جامعه رو هم مثل فرد تحت فنا تعریف کرد به اون سمت حسن تعریف کرد به لحاظ رسیدن به آن مرتبه بله باب ولایت دو قلم رو و اساسی هست حالا ولایت چیه روز اینجا بگم دیگه جلوتر میکنستم ما در باب اینکه اجتماع اجتماع حسن چیست و چه ویژگی می‌تواند داشته باشد از دلامه تبا طبع زیل آیه اسبرو و سابرو و رابطو میفرموین که جامعه انسانی می تواند روح پیدا کند و از باب اون رابطویی که پیدا می شود یعنی اتصالی که بین اعضا پیدا می شود بین اعضای یک اجتماع برای رسیدن به یک هدفی اون روح اون هدف و روح در این اجتماع دمیده می شود بنا نوع رابطه و اون هدف لزومی ندارد که حتما این الهی باشد شاید شیطانی باشد میشه ولایت شیطانی روح شیطانی درش می یعنی روح پیدا می کند این جامعه اجتماع ولذا قابلیت دارد به عنوان اجتماع حساب و کتاب بشود اینکه که که هر قومی با امام خودش مشهور میشه از این حیثه که یک پنظر نگاهیه که توی بیانات متعدد مقام معظم رحبه هم دیدیم انقلاب اسلامی یک موجود زنده است یعنی حیات رو انتصاب میدهد به یک مجموعه اجتماعی به یک نظامی و ایشون این این رابطه رو تحت عنوان ولایت تفسیر میکنن که این اتصال شدید انسان ها به یکدیگر ذیل یک دیگر هدف رو میگن ولایت که من نمیخونم فقط منبعش رو بگم که توی کتاب ولایت و حکومت صفحه 53 که میان ولایت رو توضیح میدن و میگن این اتصال ایجاد چه میکنه ولایت میکنه مونت میگن خب این ولایت دو تا قلم رو داره خب این چون مستقیمن بحث خودمون هست و بحث عرفانی خودمون هست بحث کنیم میگه یک قلم رو نفس انسان است بحث ولایت که انسان بتواند اراده الهی را بر نفس خودش ولایت بده ببینید باز بحث بحث همون که جای اراده من و انتخاب من کی بیاد بشینه اراده الهی بشین میگه منظر دومش جامعه و محیط زندگیه که باز همون اتفاق ب که اراده الهی در جامعه متجلبی بشود. خیلی عجیبه. که ما یه حویی که همون ادبیاتی که در مورد بحث عرفان نظری داشتیم، بحث ارفان اسلامی داشتیم، که ما باید اراده خودمون رو مندک در اراده الهی بکنیم، میاد توی اجتماع همینیم، توی ولایت همین دارن میگه. که توی اجتماع هم به جای که اراده الهی بیاد، اونجا حاکم بشود. با ولایت الهی در جامعه. در واقع اون چیزی که ما داریم در مورد حکومت اسلامی میگیم در واقع حاکم شدن حاکم شدن حق در ابعاد اجتماعی وقتی وقتی هر ولی وقتی حرف از حاکم شدن میزنیم تو دلش همین اراده خوابیده یعنی اراده الهی حاکم بشود بر جامعه همون ادبیات ها که اونجا می اراده فرد جا اراده جامعه اونت جامعه ای که روح داره جامعه که انتخاب میکنه جامعه که جهت داره آیا میتونیم همان ادبیات فردی رو به اینجا انتقال بدهیم؟ بله آیا با همه پویداتش خیر یه سری پیچیدگی هایی داره چطور من به خاطر وقتی دارم میذارم بگذشت که اسلام وقتی داره به فرد صحبت میکنه شامل یه سری ابعاد عبادی و اعمال عبادی و معاملاتی و سیاسی و این هست که توی فکر داری داریم ولی وقتی داریم منظر اجتماعی به اسلام نگاه میکنیم میبینیم اسلام دوبال یک ایجاد یک هندسه است یه مقداری متفاوته ایجاد یک شبکه است یک نقشه است که این برای ایجادش دیگه اجتماع اسلامی لازم دارد جامعه اسلامی لازم دارد حکومت اسلامی لازم داره. یک وضع جدیدیه که ما اقام ممعظم رهبری تفاوت مکه و مدینه رو در این میدونن میگن مکه انسانهای عابد داشت مدینه حکومت و یک اسلام هندسی داشت و یک هندسه جدیدی ایجاد میشد منطق برای اینکه این اسلام و قرار گرفتن اراده الهی در سطح اجتماعی قرار بگیره و این جامعه تحت اراده الهی قرار بگیره میگن که اینجا هم این جامعه هم حیات دارد هم کرامت دارد همین که به اجتماع اجازه انتخاب نه اجبار کرده که جامعه باید انتخاب بکند و جامعه بخواهد این مربوط مربوط کرامت جامعه است چون انسانهای با کرامت نو ساختن همونجور که ما فرد میگیم باید اختیار کند از روی کرامت خدا به خاطر کرامت بهش قدرت داد جامعه هم کریم است منتها اینجا دیگه اون کم، این اکرامکم الله اون کم رو دیگه ما باید چی بگیریم؟ ببین مثلا بیا از استعراق و افتاد مرامم مجموعهش بگیریم مثلا این آیه عام مجموع ان اکثرکم عند الله اتقاكمه که این عام مجموعیه میگه اگر که شما تقوای جمعیتون بره بالا کرامت اجتماعی تون هم میره بالا هر چقدر این رشد بکنه استعداد این موجود اجتماعی به نام جامعه روزی بیشتری پیدا میکنه که اینها کاملا هست که این آی موجود رو کاملاً چیه؟ مستعد میدونه این هم از این بحث که بحث اون استعداد و کرامت که تعریف کردیم من برای که بله شبه یه تیکش را لاغل بخونم این که مردم سالاری زنده کردن استعداد ها هم هست این همون مسئله است که این استعدادها رو میخواد بروز بده متعالی کنه خب استعدادی که فقط مردم بله از کدوم حیثیت هم مردم به ماهو و مردم هم مردم به ماهو و مسئول فردا نمی کنه که این یک شاکلهیه برای بروز استعدادها بر چه احساسیه؟ بر احساسی کرامت که حالا اینا همش فیشاش هست گذاشتم که آه. مردم باید انتخاب کنند قانون گذار را که بر این اساس قانون خواهد گذاشت بایستی مردم معین کنند مجری را باید مردم معین کنند. همه چیز باید با انتخاب مردم باشد با حضور مردم با عزت مردم و کرامت مردم دوباره بینید همون مفایم شکل میگید یه مبینی فرد کریم اون جامعه کریم این کرامت و انتخاب فردی با اسم می شود هر چقدر این اختیار و انتخاب درست باشد این جامعه متعالی تر بشود و تحت اراده الهی قرار بگیرد هر چقدر این تعالی جمعی ایجاد بشود تحت اراده الهی قرار بگیرد به مراتب بالاتری از فنا می رسد از عبودیت می رسد از اخلاق می رسد خیلی عجیبه یعنی ما وقتی که داریم حرف می حتی بحث اراده و اختیار که حالا دیگه به خاطر چیز می می مردم سالری باید با حضور مردم باشد ارتفاط فکری اقلانی، عاطفی مردم با تحولات فکر کشور یعنی باید از رو آگاهی باشد حتی اینجا هست باید بشناسند بس شناخت علم میگه مردم باید بشناسند باید ایمان پیدا کنند اصلا میگه اون چیزی که مردم رو وارد صحنه میکنند ایمان است حالا میگم یک سر الهی است که مردم جمع شدن اون سر الهی چیه ایمان مردمه و این همه باعث می شود که چیه؟ این که مردم انتخاب کنند این چطور انتخاب می با قدرت خودشون همون وحثایی این که گفته اینکه قدرت دارن، اراده دارند میان باید بشناسند ایمان به دست بیاورند این ایمان و شناخت باعث می شود که بیایند در صحنه و در صحنه بین حق و باطل انتخاب کنند هرچقدر این متعالی تر میشه با همون تفسیری که گفتم اراده خودشون رو موننده که در اراده الهی میکنن به عنوان اجتماع و در واقع اختیار رو خودشون صلب میکن. میگه هر چی خدا گفت و انتخاب میکنن دائما توی این صحنه و توی آزمایی شد آیا ما این مسیر رو بخوایم بریم سختی ندارد که یک مسئله جدایی دارد که باب مصیبت ولی نبل من نکن و بعدش که بالا فاصله بعد از اون که انال الله و انال ال راجع یعنی اینجاست که اصلا توی این انتخابات مصیبت آزمایش الهی تعریف می شود و نسبتش با تعالی وجودی و قرار گرفتن تحت اراده الهی مشخص می شود یعنی این خودش با مجزایی که خودش دولت الهی و آزمای ها باید ترجمه بشه پس از اینکه من اینم بخم این میل مردمی این جاذبه ایمانی که در دل ملت ایران موج میزند و آنها را به عنوان یک انجام وظیفه به پای صندوق ره میکشند که جاذبه ایمانیه یعنی باز برمیگرده به ایمان یه جوری یه بحث شناخت رو مطرح میکنن که دیگه من رو به خاطر وقت نمی‌خونه خب حالا این اتفاق افتاد چه اتفاقی میفته بله عبودیت در ابعاد اجتماعی متناسب با سطح این انتخابات رشد می‌کنه متناسب با این مردم سالاری رشد ما مردم سالاری دینی را مایه رشد می‌ده مایه توسعه می‌دانیم هم توسعه معنوی هم ما. یعنی بحث بحث رشته هم مادی هم معنوی انسان های آگاه مختار تصمیم گیرنده همون مطالبی که مطرح مطالب شد و دارای حسن انتخاب یعنی آگاه هم علم دارن مختارن خدا به خاطر که اختیار داره بر اساس این دوتا آگاهی و اختیار میانی انتخاب خوبی انجام میدن عملا ولایت الهی را برمیگذیند این واژه. اینکه اصلا ولایت الهی میاد اینجا متجلی میشود. و در آن راه حرکت میکنند یعنی طی طریق می‌کنند. محبت الهی را کسب میکنند و خود از محبت پروردگار پر می‌شوند. اینا کاملا با ادبیات عرفانی کاملا میگه اصلا میاد تحت ولایت الهی محبت الهیه. بحث رضا است. رضای الهی اونجایی پیش میاد که انسان صرف چه می‌کنه؟ اختیار از خودش می‌گیره. این ولایت الهی با ولایت خداوند در عالم سیاست و مجزید تفاوت جوهری ندارد که حالا دیگه پایین توضیحات شمید خب و آخر عرایزم که به بحثتی از وقت هم گذشت امروز بهترین چیزی که ممکن است ما بتوانیم برای تصفیح اخلاق برای تصفیح اخلاق و منش خودمان ملاک قرار دهیم مردم ساله این اصلا یک فضای جدیدیه ما طرف میاییم مراسم‌های دینی میاد برای رأی دادن الان مقام معظم رهبری اینجوری میگه آقا ما بهترین چیز برای تصیح اخلاقمون چیه مراسم دینی یعنی هی خلق نیکو پیدا کنیم لو اینکه میگه برای تمام کردن مکار اخلاق هی بخوایم اخلاق حسنه بشه و به اون مراتب آلیه اخلاق برسیم میگه بهترین چیزی که مم... ممکن ما بتونیم برای تصیح اخلاق و رفتار ملاک قرار در این مردم سالی نیست بعد در نهایت هم حالا دیگه رو هم بخونم نیدارم تأکید بر جمهوری به خاطر این است که نکته مهم اتکاب مردم است اگر اسلام باید در جامعه حاکمیت پیدا کند بدون ایمان عمومی امکان پذیر نیست یعنی ما یه طرف حاکمیت عمومی اسلام رو داریم یه طرف ایمان رو داریم یه طرف مردم سالاری رو داریم که مردم سالاری میآید با اتکا به این ایمان اسلام رو حاکم میکنه در چه عبادی در همون عبادی که توضیح داده شد و, بیه حالا بیه بمانه. و حالا محمد به حال و بی بمان رسلنا الله محمد مولای طه ببخشید من اجازه پرسیدم شما الان این است قبلی کردم برای این برای اشاره ای به سیر بحث از ابتدای بکنم و در خاطرمون که باشیم از در اول بحث فهمید که ما بحث مردم سالاری دینی وقتی مسئله رو در حوالی انقلاب بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرد نه تغییر پیدا کرد مسئله فقط سیاسی و اما خب حسب طور امام تاکیدشون به مردم سالاری دینی دید. خب خود این مردم سالاری رو دین گرفته شده و رضا باید یک قرائت کامل تری از مردم سالاری دینی در همه ابعاد دینی باشه سرطان جنبه سیاسی نداشته باشه و شروع بحث شما در این بود که انسان خب به چند تا دو تا بود داره بود ملکی و ملکی داره و, ملک و, ملک و این ابعادش اصطلاحا دارای سیرن هم سیر و سلوش و هم سیرولت دارن رشد کنن تیه کنن مسیری رو چرا که انسان قابلیت تیه کردن همچین مسیری رو داره لحاظ استعدادی که خدای متعال به اجتاده <تصح> و این انسان قابلیت داره که اون سی رو بره تا بره به مرکب عالیه و اون وجود خدای متعال که از این استعداد الهی اون بیناویته بریسه بعد برسی که فرموده این که خب انسان داره کرامت و این کرامت انسان هستش خدای متعال این کرامت رو به انسان داده که بتونه این مسیر روتیه بکنه و البته این کرامت هم برای انسان هایی که داره تقوای بیشتری داشته باشیم. حالتیه که به حالتش زمانی که نکره من و اطرافكم باشه و این تقوا چه به وجود میاد؟ این تقوا از مراقبه به دست میاد نیست، مراقبت نیست به دست میاد. و اصطلاحاً این مراقبتی که از تقوا به دست میاد، این چرا طبیعی وبسد تا این که کم کم باعث میشه این مراقبت بیشتر اراده الهی در انسان بیشتر جاری بشه یعنی حالتی باشه که نسبتش با توحید بیشتر بشه با اراده الهی بیشتر بشه باعث رشد بشه بعد ولذا این مراقبت و تقوی باعث که شناخت پیدا کنه علم پیدا کنه و جایی که بس قدرت و اراده و میشه بعد بس اختیار مطرح شد این اختیاری که به ما داده شده که این مسیر رو بتونیم طی بکنیم این اختیارم هم باز همون در راستای اون کرامت هست و انسان میتونه هر جایی بره بالا که میتونه بس اختیار هر جایی بره بالا که اون اختیار خودش رو اختیارا آزادی خودش رو بفروشه تا به اون عبودیت برسه این عبودیت در مراتب رو عالی به جای میاد که اصلا انسان نوع اختیار نداره نه اینکه این اختیاراً کاری کردی که اختیار نداشته باشه چرا که عبد خدا میشه یا یعنی هرچند خدا میگه اون بودیت در چارچوب اختیار این انقضای اختیار میشه و این مرتبه عالی تر نیست. این یک سری مقدماتی بود در مورد بعد. بعد از این طرفم گفت این تو انقلاب نظام اسلام جمهوری اسلامی در چارچوب مسائل اسلامی بوده و در این چارچوب خب اونم هم همینه که مردم رو به اون توالیه برسونه به اون سعادت برسونه استعداد مردم رو تحت اون اقودیتی رشد بده و بالا و گفتیم که خب آه میشه مگه تو همی عباد جامعه همچین کاری کرد این بردست سایه ولایت همچین چیزی امکان پذیر هست چرا که همه مردم با تا جمع آیه که فرمودن اسفر و صابر و رابطو این ارتباطه این مردم داره روح از این بحث اشاره به این بحث معقومه اللامه هم دارای روح هم اتصال شدید دارن من دید. اتصال شدید این مردم که دارای روح هستند در سایی ولایت اصطلاب اون هدفه میتونه برسونه و فهموندید که ما تو بحث حکومت اسلامی اون چیزی که میگیم حاکم شدنه حرف در احکام اجتماعی دیگه، این هم خود دوباره همون بسی که اراده الهی در رو که حاکمیت جاری بشه دیگه پس اینجا بگیم جامعه روح داره، جهت داره، از اون اراده الهی این تو جامعه باید جاری بشه اینجاست که بسی مردم سالاره دینی اینجوری باز میشه، این باز میشه که مردم سالاره دینی اومده که این استعدادها رو زنده کنه این محبوب میگن استعدادها رو زنده کنه حاکمیت اجتماعی باشه در در تحت اراده الهی قرار بگیر استعدادها رو زنده کنه این مردم هم به ما هوه مردمه به ما مسئول مسئوله و بر اساس کرامتی که این مردم دارن و رضا این بحث کرامتی که مردم دارن و لبت کردن من این آدم هم در این راست در نهایت هم اون بحث اون تعالیه کامل رو هم که فرمودن که حتی انتخابی که مردم دارن انجام میدن تو انتخاباتونو شرکت میکنن، انتخابی که انجام میدن. اگه در این راستا باشه، وارد این که میشن، انتخاب این حق و باطلشون میره به سمتی که باز این هم تحت اراده الهی قرار بگیره، تحت اراده و اختیار خداوند بگیره. و یک عبودیتی در سطح جامعه، شکلی که باعث رشد و هم رشد مادی و هم رشد معنوی بشه، چرا که به فرموده حضرت فرمودن که مردم سالاریتینی رشدآوره این ولایت، بلایه تلاهی روشداوره با این نکته فهمدن که حتی بهترین چیز برای کسی این اخلاق هم بردم ساراری ها رو بنده خیلی از کاری این ساکن بکنم خب ما خدمت آیدو فروت که آید که ما اختیار رو توی پراتب داریم. مم. که آیاد بشه هست و اینا آورده شده فقط اینجا مراد از افتیار بینه بین مثلا مواردی که از خلن و یا مواردی بالا بین سلاح و غیر سلاحه خیلو شرم حالا دوزو من روزن بعضا بین افسد فاصله بین اهم و مهمه ولی توی مراحل مجرده بیم اون طرف چیز نیست همیشه بین تعالی بالاتر و تعالی زیفتر اونجوریه خب خیلی خبایده بس بسم الله الرحمن الرحیم و به سلام سیدن و نه و سلام بمایی من در مرض تصریح دارم خدمت دوستان از زوزای و آهین ایام رو و عرض تشکر از جماعی دکتر و مظاهری اصل <تصفح> ایده واقعا ایده خوبیه چون من خودم پر نومی هر شده و بحث نقش مردون در حکومت اسلامی بود حالا منظر سالن مالی 100 رو مرنمای ناآیینی بررسی کردم که حالا تقریبا به نوامبر 13 اوایل مثلا دهی 90 بود خیلی توی بورس بود های فخی این موضوع اون مبانی فخی تفویض قدرت به مردم چی میتونه باشه ولی خب من واضیکه عرض کنم مثلا باشه پایانامه من بود و این ها ولی از این منظر هیچ وقت نگاه نکرده اونم به این موضوع و این خودش ایده جدیدیه و صرف مطرح شدن حالا شاید باز به زم حقیر و نظر من کمترین چند انتقاداتی به وارد بشه باشه ولی نفس مطرح شدنش ایده خوبیه و خودش یه قراعت جدید از بحث مردم سالاری نکته ای که من حالا اول جلسه به نظرم میرسه اشاره بکنم بحث نظریه خلافت انسان مروم شایی یعنی به نظرم حالا درد پیشنهاده یکی از نظریه های متقنی که یا عالم دینی از حالا پایگاه فکری خودش مطرح کردن توی نسبت به اسطلاح مردم و حاکمی و یا یعنی یه نسخه بدیل دارن مطرح میکنن ناظره به اون به غربی و قابلیت استفاده توی این ایده ای که از اتوالی برای بحث طلاقی به اسطلاح ارفان و سیاست بر مردم سالاری مثلا اون خیلی جای کار داره یعنی شما به نوعی میتونید این رو بستش بدید دیدگاه میشون. خب شاید مثلا بز... بعضی از بزرگان ما انتقاداتی به فرمایش مهمون شهیستد داشته باشند چرا مثلا اونجا کاملا بحثش رو ابتناه قرآنی داره از بحثه روایی استفاده نکردن خصوصا بعضی از مشهورات و مقبولات ما توی نظریه بلد فقیه رو به نوعی اون دیدگاه ایشون اونجا داره نقض میکنه. ولی خب نگاه یه نگاه ارزم موضوع شما به نظر میرسه که کاملا انسانشناسانه دینی به مقوله دموکراسی حالا مطرح تو زمان خود ایشون و حالا بحث جایگاه مردم در حکومته که به نظر خیلی قابلیت بحث داره که ما هم الان ماردش نمیشم چون قاعدتا محل بحث شما هم نبود ولی این درده پیشنهادی خواهی شما یه نکته ای که به نظر میرسه اینه که شاید توی این ای که به اسطلاح داره مطرح میشه وقتی چهارچوب کلی و کلان بحث نگاه میشه شاید این اشکال مطرح بشه که مثلا اگر ما به جای اصطلاح الان مردم سالاری ما مثلا اصطلاح مثلا تعاون اجتماعی متعالی رو داشته باشیم توی این ایده چه اتفاقی میفته آیا واقعا نغز قرض هست آیا این عنوان میتونه اون معنونی که ما نظر داریم رو تعمیم بکنه یا نه شاید این اشکال وارد باشه که نه خیلی تفاوتی نمیاره یعنی شما اصطلاح معلوم سالاری رو اینجا عقص کردید ولی دارید دلالتهایی رو حمل برش میکنید که خیلی یه کشش اون رو نداره چون اصطلاح خوب اگر ما به انزبات مقانی و اصطلاحات علمی باشیم اصطلاح یه کششی داره یه کشش معنایی محدودی داره ولی آنچه که داره توی این ایده مطرح میشه چیزی فراتر از بحث مردم سالاری دینی من به نظرم توی فرمایش حضرت آقای این درسته که مردم سالاری دینی یا حالا دور کلی بحث مردم سالاری صرفاً سیاسی نیست و صرفاً محدود به حوزه انتخابات نیست ولی صد در صد محدود به حوزه حکمرانیه محدود به حوزه یعنی تنظیم ارتباط حاکمی از و مردم اما نمیتونیم مثلا یه مردمی رو یه جامعه اش... یه جامعه یه جامعی انسانی یه گروه اجتماعی مثلا ببریم توی جزیره جدایی اصلا هیچ ارتباطی نه حاکمیتی داشته وشان نه به دستگاه مثلا اداره جامعه جامعهی داشت هیچی اینا قرار با همدیه زندگی بکنن و اینها رو بهشون بگیم خب شما مثلا اینا شاخصهای مردم سالاری دینیه یا حال مردم سالاری یا دموکراسی حتی حالا شما تابع اینها باشید خب اصلا اونجوری دموکراسی معنی نداره اونجا صرفا یه جامعه‌ای که دارن با هم دیگه زندگی می‌کنن و این فرمایش و اصل خصوصا محور ایده‌ای که شما مطرح کردید کاملا قابلیت اینکه به جای مردم سالاری مثلا اصطلاح اجتماعی مثلا موجود بشه داشت دار. و این شاید مثلا یه نقطه ضعف باشه که ما یه را یه را داریم یه اصطلاحی رو یه اصطلاح علمی منذبطی رو داریم مثلا قلب معنایی میکنیم برش یه چیز دیگه داریم میکنیم. پس اگر هم ما قرار شد مردم سالاری رو به سیاست صرفاً و بعد سیاسی تقلیل ندیم حتما باید در بعد انسانشناسی سیاسی بحث بکنیم یعنی اگر هم قرار شد که بره توی فضای مثلا تحلیل انسانشناسانه کاملا انسانشناسانه سیاسی یه مقوله مرتبط با حوزه حکومتی حاکمیتی حکرانی هرچی یه مقوله‌ای که یه دوگانه داره دوگانه حاکمیت و مردم حالا میتونه حتی این تو سازمان مطرح بشه دیگه موجود و مثلا توی سازمان هم بردن مطرح کردن بگیم آقا حالا حکومت به اون معنا نه ولی یک سازمانی هست که مثلا مدیر داره، ساختار داره، قوانین داره و یک سری نیروی انسانی هم هستن که اونجا مثلا محل به اصطلاح متحمل یک سری برنامه ها قوانین و اینها بشه اونجا مثلا باز بحث دیموتراسی و اینها و ولیزا این اشکالات رو بعد این شکلی به نظر مرتفع حالا توی خود نقطه تلاقی با ارفان هم باز به نظر هم نقاط افهامی هست و این نقاط ابهام هم از اینجا جدی میشه باز این هم در امتداد همون اشکال اول که شما توی عرفان بحث با همون تعدیری که شما اون توصیفی که بین اراده و اختیار داشتید اگر اراده و اختیاری هم هز اون اراده و اختیار فانیه در اراده و اختیار الهیه که به قول معروف میگن به اون فرده گفتن موازات ورید گفت اولید و انلا اولید اصلا میخوام که هیچی نخوام یعنی این دیگه مثلا اوج فنای اراده و اختیار در اراده و اختیار اعلان حالا شما بیاید توی دموتراسی به معنی حالا غربیش مردم سالاری و مردم سالاری دینی تو همین ادبیاتی که ما داریم میگم من به نظرم اینجا با وجود اینکه بحث به اصطلاح متعلقات اراده متعلقات اعتقادات در بحث دموکراسی دینی رو ارزم کنم یا مردم سالاری دینی مطرحه یعنی این شکلی نیست که ما سکولار بحث بکنیم توی, توی مردم سالاری دینی ببین تو مردم سالاری دینی که دیگه اصلا خدا که در نظر اگه افته نمیشه که فقط اراده و اختیار مردم مطرحه نه اونجا هم هست ولی وقتی شما اینکه مردم سالاری می نگاهت رو میدید روی مردم سالاری، یعنی آقا ببین من الان دارم در رابطه با حیثیت به اصلاح پررنگ شده اختیار انسان دارم و اختیار مردم دارم صحبت میکنم میدونی چی میخوام بگم ببینید یک وقت حد شما میخواید در رابطه با شخص محصوم علیه السلام صحبت میکنید میگید که ببین محسوم هی... دو تا حیثیت کاملاً متناظر با هم داره یه حیثیتش انا مثل مثلکمه یه حیثیتش ان و الای بعد شما میاید رو حیثیت اینوریش مثلا مثل همین قضیه اخیری که اتفاق افتاد حالا غیر معصوم این مثالش دارم از مثلا حضرت ابا میاد با تمام اون توصیفات مثلا معنوی و اعتقادی و اینکه اصلا ایشون یه مكتبه اینها یهو میان میگن که آقا حواستون باشه اینقدرم دیگه مثلا از واس مثلا یه ماورایش نکنید ها که ببین آقا اصلا ایشون یکی بوده که چیزیش که نمیتونه مثلا ایشون باشه چرا آقا آقا بود آوردن رو این بر این به معنی نفی اون طرفه نه دیگه دارن میان میگن نه خب نگاه کنید این بالاخره بشری بوده از یه شروع کرده یه ممارستی داشته یه مثلا تقریبا مثلا جدی داشته و اینها خب حالا یکی میخواد بگی که این پس این برای یکی هم میخواد بگه که نه آقایشون همین که همه بوده یکی به خوبی این همه سردار شهید داشتیم و فلا این ها بعد میان اون برای ماجرا این ها برای ماجرا میان میگن که نه ایشون مکتبه اصلا خود این شخصیت نظام فکریش نوع عمل کردش این یه مکتبه یعنی دارن میارن اون طرف میخوام بگم ببینید یک وقت هست شما دارید کلیت ساختار یا حکومتی رو ترسیم میکنید میگید این حکومت اختیارات ولی فقیهش اختیارات حکومتش اینه این طرف اختیارات مردم اینه تو هر زاویه نگاهی که میرید و توصیف دارید میکنید نمیتونید از ادله طرف متناظرش استفاده بکنید من احساس کنم یه تناقض درانوی و پارادوکسی توی این طلاقی ارفون و سیاست و مردم سالاری هست مثل اینه که مثلا شما اومدید روی نما بشر و, مثل و کم داری صحبت میکنی میخواید تو این زاویه نگاه صحبت کنی ولی کلا رو عدله محسومیت و الهی بودن و غیر مادی بودن و اینها رفتید تمرکز کردید آقا که به هم نمیخوره اگه میخوای بود مادی رو توضیح بدی که خب همون بوعد مادی رو توضیح بده نه البته به طور مطلق تا بعدم بتونه اون بوعد الهی و معنیش هم توضیح بده. ببین اگر ما میگوییم مردم سالاری یعنی ما یه حیصیتی رو در نظر گرفتیم که در رابطه با خاص و اراده مردم و حوزه اختیاراتشون و اصالت اراده و خواستشون صحبت بود اگر تو همین زاویه نگاه اومدی و اینو گفتی که تو بودلرونی هستن یعنی اینکه اوریدان لاوری لا من این طرف اومده به اسم مردم سالاری ولی می‌خواد یه چیزی انتخاب بکنه که اصلا اینا حداقل اقل بزن عرض میکنم شاید انقلاب در اون مفهوم باشه یعنی یه چیز دیگه ایه غیر از مردم سالاری یه اتفاق دیگه ای داره بخاطر همین نه نف... نفیش به طور کلی نمی کنم ای داره ولی میگم تو قالب مردم سالاری نمی این هست مردم سالاری یعنی اصالت دادن و حیطه اختیارات و اراده مردم رو مشخص کرد. یک نکته دیگه هم که هر شاید دیگه اینا نقاطه و علاویز پایانی حقیقی باشه اینه که ما معمولا عرضا موضوع شما توی خیلی حالا به طور کلی توی بحثه اسلامی که یه مقدار مثلا جنبه کارورزی هم پیدا میکنه مثلا این جنس بحثه مثلا سیاسی حالا به صورت خداگاه یا ناخداگاه که امدتا به صورت ناخداگاهه به محل نزای اصلی که میرسیم میدون رو دول میزنیم یعنی تلاشی می کنیم میدونه رو برش داریم از وسط و وسط ردشیم میدونه رو دولش میزنیم یعنی سعی می خیلی به اون محل نزای اصلی نفردیم چقدر خوب بود مثلا شما اگر واقعا معتقد به این هستید که مثلا این دیدگاه این ایده ایده تلاقی عرفان و به اسطلاح سیاست بی نظریه مردم سالاری میتونه یه ایده یه کارساز و نظامساز حتی برای آینده مثلا جمهوری اسلامی باشه بیایم دقیقا روی اون محل نزاهای اصلی محل نزاع اصلی توی بحث مردم سالاری دینی که همه هم میگن مثلا من یادم مرمای مهدوی کنی میگفتن که دین سالاری مردمی اشون تریفی میگفت من دین سالاری مردمه قبول دارم چرا این دعوای اصلی سر اینه که آقا من رسیدم الان اینجا من دوست دارم این قندون اینجا باشه حاکمیت دوست دارم قندون اینجا باشه الان چی کار بکنی؟ یعنی الان ایده طلاقی به بفرمایید که ارفان و سیاست توی این موضوع مردم سالاری چی حکم میکنه؟ سطوهی که مشخص میکنه برای این محل مثلا من میتونم سادش بکنم قضیه رو بگم آقا فرضوا در این بذارید که علاوت خیلی سطوح مختلف و پیچیدهی خواهد داشت ولی فرضوا بر این بذارید هر دو تا استنادات دینی هم دارم این میگه من بر اساس فهم دینی خودم من مثلا با تقلید از مرجع تقلیدم یا خود من مجتهد میگم گندوم باید اینجا باشه شما یه حاکمیت هم میگید که گندوم باید این طرف باشه الان گندوم کون طرف باشه یعنی الان با همون بضییده تلاقی عرفان و سیاسن. اینجا ما چه احکامی رو چه الگوهایی رو برای مدیریت صحنه خواهیم داشت این بلخره توصیف هستها و نیزها باید به یه واید و نبایدی برسه باید به یه مرحله انزمای برسه که خود حالا نفس کارآمدی اون ایده هم محک بخوره. یک وقت هست مثلا واقعا مردم یه چیزی به نفعشونه یه چیزی به ضرر حکومته اونا هر چیزی به نفع همین دنیای مادیشونه، همین الان نشونه. اصن کاری به آینده هم ندارم. یا آقا این قیمت این بنزینه 90 یورو بشه. الان مردم یه زیادی از مردم مثلا مخالف ارزش و قیمت بنزینه. بعد رسیده‌ مثلا همین 2 سال چند بود؟ 98 بود. آره، 98. آقا حاکمیت میگه این قیمت بنزین باید زیاد بشه. ولی اینکه الان به ضرر مثلا فعلی تو باشه، مثلا او فهمشه دیگه. ولی اینکه حاکمیت میگه آقا نه به ضرره تو هم نیست. ولی میاد و به اصطلاح چکار میکنه میاد و خب تهاجوز میکنه یک وقت هست که نه کاملا اختلاف اختلاف سلیقه‌ایه یعنی اصلا بحث نفع و ضرر مطرح نیست سلیقه یک قشری از مردم نه حتی اکثریت قشری از مردم میره برای انتخاب و یا معطوف کردن اراده به اون انتخابی که شما میدید به سمت یک موضوعی اراده و انتخاب میاد و حکومت میره به سمت یک موضوعی این بحثای دامنه داری که همیشه مطرح بوده لذا اینها رو به نظر میرسته که بعد بهش پرداخت ببینید این که حضرت امام با مثلا همین توابعی که شما میفرمانی یا خود حضرت آقا چه تو سیره یه چه توی فرمایشات این رو دارن میگن میگن آقا مثلا همین که حضرت اماما میفرمان حکومت میتونه یک طرفه های و یک جانبه همه ی که مثلا با مردم فسب. خارج از هیته قرار و قرارداد هایی مثلا شرحی و فری و قوانین فقیه که کنه این که اختیار مطلق اصلا اختیار یعنی چی؟ میگن در مقابل اختیار مردم ما اختیار مطلق پیامبر اکرم رو که در هیته حکومتی داشتن رو برای ولی فقیه قائلیم. خب ببینید این تضایف منطقی دیگه شما وقتی اختیارات گسترده برای مردم قائل میشی و برای حاکم قائل میشید به طبعه اون و هیچ فعلا صحبتی هم در رابطه با هیته اختیارات و خصوصا توی محل تنا تزاهم اختیارات مردم و حاکمیت نیست وقتی به طور مطلق دارید این فرمایشو میکنید یعنی چی؟ من لذا فهمم از مردم سالاری و مردم سالاری دینی که هیچ وقت اصالت و مثل مثلا اون دموکراسی به صلاح قربیش اصالت با خاص و اراده مردم نیست بله مردم الان برابری میخوان ادالت میخوان ازم به حضور شما رفاه اجتماعی به تعبیر خودشون میخوان و بله، اینکه که میگن مردم یعنی عموم دیگه فرق نداره چه ایران یه خواستهای های عمومی این شکل دارن که اتفاقا اینها همیشه جز پیش های دموکراسی بوده دیگه میگه پیش دموکراسی چیه اینه که برابری باشه این که مثلا نمیدونم اراده مطلق و آزاد باشه مگر اونجایی که مثلا نقض بکنه به اصطلاح اون منافع شخصی و فردی افراد روز. پس من فهمم اینه که هیچ وقت اراده مردم با هر تعبیری نمی تواند تراهی و نقشه راه باشه توی فضای, دمور... توی فضای مردم سالاری دینی که ما داریم بید. مردم سالاری دینی کاملا تو تنظیم روابط فرد و حاکمیت چیزی دیگه غیر از این حداقل تو الان غیر از این ایده ای که شما فرمودید نبوده و اونجا اصلا بحث اصالت بخشی به فهم اراده و خواست مردم اصالت باز میگم نبوده خب چه اتفاقی تو مردم سالاری دینی میفته تو مردم سالاری دینی یعنی اینکه حکومت باغبانی است باید بستر رشد فهم و بصیرت اجتماعی مردم رو فراهم بکنه نظرم به مسائل و مفاسد خودش آقا پس چرا مثلا حضرت آقا سفت و سخت جلوی برده وای و اتفاقا تأکیدم هم کردن گفتن که این یه تجربه خوبی شد با وجود ما خسارت محض بود ولی یه تجربه خوب شد من اینکه واقعا مردم یه رشد فکری پیدا کردن تو قضیه برجم که آقا بستن و زدن و مثلا زد و بند و این حرفا با غرب مشکلی از مشکلات ما حل خب میتونستن بیان با همون اختیارات مطلقی که ولی فقیه داره تو همون نظریه ولایت مطلقی فقیه بیان و سفایستن بیان آقا من همون تو که میگم خوشبین می نیستم مخالفم خالفم هستم و نشود ولی میان و میگن نه خب برو تجربه بشه مردم هم ببینن این تجربه این یعنی همین این یعنی مردم سالا دیدی یعنی چون مردم عموما افکار عمومی الان یک گرایش داره که خب پس بریم این کار رو انجام بدیم شاید خوشایشی حاصل بشه من این مسیر رو میرم تا شما بفهمید حال که خودت نفهمیدی پس برو تجربه کن تا مثلا نمیدونم 20 سال کل ساختار حسید عقب بیفته نمیدونم بعد 8 سالی دولتی که متلاشی کرده تمام زیربنای اقتصادی رو حاکم بشه و اینها تا بعد خودت بفهمید چه بلایی سرتون اومده لذا فهم من اینه که مردم سالاری دینی اگر حالا قرار شد روی اراده و خواستشون هم بحث بشه بله پذیرش اونها خیلی مهمه همونطور که از زمان امیر المومن علیه السلام هم قضیه پذیرش بید پذیرش و اجرای اراده و خواست مردم اصالت داره ولی توی طراحی، توی اداره، توی سازماندهی، توی نقشه راه به اسطلاح تعبیه کردن تو حرکت کلان هاکمیتی اصلا تمام اینا در حیطه ولایت است ولایت باز به معنی اهم میشه این حالا اجمال حرای زهفی اشانا که ازم بوزید شما مقداری روشن بکنه فضا رو برای توصیه مواعظ که مطرح شد ولی در کل من خیلی میپسندم نفس این ایده و قراعت جدید است مردم سالمدرو ببخش شما نه سلامت از طالبی بحثی به که نظری خلاقیت انسان در انشیه شاید شهید سرجی بشه فرمودید که این بحثی ام جای مزارع تمام مکانی نوعی بحث مردم سالاری ولی ایسته این که اینجوری فهمده خب اگر ما ایده مردم سالاری یعنی این ایده که مطرح شده در اصطلاح مردم سالاری دینی مثلا به کار گرفته نشه یه اصطلاح دیگه این مثلا تعاون اجتماعی متعالی یا مثلا چیز دورایی باشه آیا نردادرد میشه یا نه چرا که خب شاید کشش معنایی مردم سالاری دینی به این نت باشه که اصطلاحش که بیاد این مسائلی که مطرح شد در مورد افغان و افتیار و اینها رو مثلا بیاد توش بگنجه گنجه و فهموده که آلا درست بود که از آقا فرمودند که بحث مردم ساله ردی نیست، سیاسی نیست ولی خب بالاخره باز مرد به بحث هار و چارچوک حکومتی و اینهاست یعنی خارج از این هم نیست تو این ایده شاید یه مقدار قلب معنا شده باشه و بحث به این شکلی ایجاد شده باشه. ولیزا ما باید این اصطلاح رو بیاریم در معقوله مثلا انسانشناسی سیاسی بیاریم بیشتر بحث رو و معقوله که مرتبط با مسال حکومتی و انسانشناسی سیاسی باشه و همچنین در ادامه ما فهمولیتون بحث ارتباط سیاست با عرفانش کمی ابهام داره و ابهام هم به این خاطر هستش که ما در اصد بالاخره درسته که این دو اختیار هم همه اختیار الالیه ولی خب تو بحث دموکراسی هم که ما اختیار داریم اونا هم با اون بحثای اختیار خودشون مطرح میکنن و در نگاه ساختار حکومتی هم ما هم یه سری اختیارات حکومتی هم داریم یه سری اختیارات مردم داریم نه هر کدوم خواست برای خودشون یه سری عدلی خاص خودشون رو اینجوری نیستش که در کنار هم بشه به اینها تعریفی کرد چطور که ما در بُعد مادی هم مثلا مثلا مطرح کنیم روی انتخاب مردم، اراده مردم اختیار مردم باید تحلیل ها و ادلاون تو بود ماتی بیشتر بیاد و تو بود عرفانیش هم به اون شکل یعنی تو چارچوب و های خودش به کار گیرده بشه که و نقطه هم که اگر آن فهمونید که ما در خصوص مردم سالال دینی این سری نزاع‌هایی داریم که شبهاتی داریم الان رو بورس اصطلاح یعنی که مطرحه و مثلا هم دوایی که میگن که آقا مردم یه چیزی بخوام میکنم یه, یه, یه چیزی یه بخا موقع چه حوکی می کنه حاکمیت ایشون میخواد مردم یه چیزی بخوام از سوال شما این بود که این ایده ای که آیت مظاهری فرمودن این ایده چه حوکی میکنه در مورد همچین مساله که حل نزاع هست و سطوحش چیه ستوهی که توی زام مشخص میکنه چیه الگوش چیه راهکارش چیه و در ادامه خب فهمید که سه تاریخی داره مردم سالار دینامیکی تاام که این مردم سالار دینیا هیچ وقت اینجوری نبوده که احالت با خواست اراده خود مردم باشه اینجوری نیست این خود اراده مردم شاید نتونه نقشه نقشه بده راه بده چون حکومت نیست باهبانیه میاد زمین میده مسیر میده جهت میده که این مردم میاد اون زمین رو جهت رشت کنن دست پیدا که همون بحثی مثال برجان و اتفاقایی که افتاد و رهبری مثلا در مردم اون طور که آقای بخشیر مردم موضوع کردار نکردند. نکردن ادامه پیدا کنید پیدا خیلی خلاصی ترگیده مرسونم های مذاهی هستیم آقایی و مخوادی که خیر اسئله ها رو کردین. خوش، کردیم سوال کردین و ان شاء الله بتونیم که با نظر شما این رو یواش یواش به پختگی برسونیم. مسئله که مطرح شد توی بحث اصلاح مردم سالاری این بحث رو وجهش نداره. به لحاظ معقول این ایدی ورد من کپی کانال من اون توی نشر بلاقه اون که اومده می‌دونید که بالاتن واجب حقوق الله صلّحانه، علاو عباده النصیحته، مملکه جهده و تعاون علاو اضامه الحق بینهم. نما ما از همه رفتری زهی نمیگم توزید که جز مهمترین و لازمترین حقوق پروردگار تعابون علا اقامه حقه همین تعابون اقامه هم یعنی که جز مهمترین حقوق این چیه که با هم متعب بشیم تعابونی داشته باشیم برای اقامه حق اقامه هم که یعنی فعلیت دخشی یعنی فرق داره با مثلا گفتن یا فقط مثلا صرفنیت یعنی قوان دادن یعنی بیاد با یه توش هست. و حق متجلی بشود در واقعیت باید همکاری کنند تا حق در جامعه اقامه شود یعنی این مسئولیت مردم است مردم مسئولاً باید کمک کنند در کشور حکومت حق برپا شود حق اقامه می نه حکومت ما دائم ما این است ما از اسلام صرف نظر نمیکنیم کنیم در همه امور زندگی ما واجب الاتباع می دانیم اسلام رو همه امور زندگی چه رو می و تلاش و سعی ما این است که به این برسیم یعنی بحث اقامه حق رو رفتن بر اقامه هف بعد رسوندن به حکومت و گفتن ما اسلام در همه عباد واجب الاتباع میدانیم عباد زندگیمون و ادعا هم داریم که میخوام اون سن برسیم بعد میفرمایند چارچوب و قالب ما برای ورود در این میدان تن میدانی شد توضیح تا دید مردم سالادی نیست یعنی اصلا میان سر واجبه تعاون برحق میگن ما چارچوب قالبمون برای اینکه ای اسلام رو اتباع بکنیم و حکومت حق رو برپا بکنیم در همه ابعاد مردم سالادی نیست در مورد نه مسئله خلافت انسان شهید صفری گفتید بنده قفلت کرده بودم یعنی به ذهنم نرسیده بود که همچین چیزی میشه استفاده کرد و تصور قبلیم رو نداشته بودم و اصلا استفاده میکنم حالا اگر هم شما نوشته ای دارید یا تحریری دارید که به نظرتون کمک میکنه یا مثلا جای خاصیش به نظرتون هست اگر بفرمایید خیلی ممنون می‌شام بحث بعدی که فرمودی حالا من بتونم اون مسئله ام. من میخواستم جدا کنم ولی خب فایل به ورده هر کاری نکرد چیزی رو اینکه مردم سالایی بیمون و مردم سالاری چه نسبتی با هم دارن خودش یه ای بود که خود امر مردم سالاری دینی امر مشککه من فیش بدونم بدانا و که این مردم سالالی دینی در ابتدای انقلاب شکل انتخابات و نظام رو میکنه در ادامه من و رو رو باید بشین طراحی بکنیم که چجوری میگه بکشیم توی عباد متحده و رشد و تعالی بدیم حاکم بحث اصلاح اخلاق و مطرح می‌کنه یک یعنی بهترین چیزی که برای اصلاح اخلاق مذهب سالاری دنیا منتظر به قول شما باید گه این بشه باید. نیست یعنی یه چیزایی یه رشهاتش هست توی صحبت‌های مقام معظم رهبری دیگه احقاق و حقوقی میاد یه طرفی که هستهایی هست که باید ازش در بیاد ولی نظام حکومتنی ازش در بیاد و نیست و باید کار بشه و بنده نخرافتم این قضیه و بنده نیستم یعنی فعلا ولی این که این قابلیت رو دارد ولی یعنی قشم اطلاع میتوند که یک نظام مشکل منطقه این فیش هم خیلی شاید جالب باشه که ملت ایران به برکت انقلاب توانست با کرامت خودش آشنا مسئله شد بیامیدی شد تصمیم بگیرد و اقدام انتخاب کند خوشبختان ایمان امیر ملت ایران به مبانی اسلامی به طور طبیعی مردم سالاری را بر پایه‌ی تفکرات دینی استوار کرد. و پنجوش که یه مردم سالاری یعنی جالبش اینجاست که بهترین شکل مردم سالاری هم همین است. یعنی ما میتونیم مردم سالاری های هم تصور کنیم که شکلی نباشد. غیر از دموکراسی، یعنی یک تبیل دارم نداریم. ولی خب اینا بهترینش چیه؟ بهترینش همین مردم سالاری دینیه. از کجا میاد چون مردم متدین و دینی این و بعد پای تفکرات دینی استوار کرد که حالا ادامه شدید بعد که می که این حاصل طبیعیه که مردم سالای دیوی داخل ایران روشته بکرد و بحث بعدی اینه که اینه که نسبت حاکم و مردم که مطرف شد چندتا من بخونم خود. یک تلقیه دیگه این که نه اگر چه مردم باید هدایت بشوند و راهنمایی بشوند و حتی در موارد تخلفها ها و ها و سرکشی ها و تقیان ها باید با قدرت و قاطعان مقابل و مواجهه بشوند اما حرکت اصلی به دو دوش خود مردم و تابع اختیار خود مردم است. و این خود مردم که باید حرکت کنند اگرچه به هدایت من الله یا من الله. اما خود مردم باید انتخاب کنند اختیار کنند و بروند انتهی کنند سهی داشت داشته بید. تلقی اسلام از حکومت این دوباره است. آنی که ما از متون اسلام از شیره حکومت اوسیالله میفهمیم این دوباره است. تحکم در جامعه اسلامی نیست بار حرکت بر دوش انسان هاست. حاکم خادم انسان هاست. مشوق انسان هاست. دور کننده دست توپیان از حرکت کلی و اصلی انسان هاست. کم را. رابطه حاکم و محکوم اینجا جای نقطه هست. یا آهاد مردم اگرچه تعبیر محکومین هم شاید درست نباشد. رابطه چوپان و گوسن نیست. بلکه همه چوبانه. یعنی اصلا تصور متفاوته از باغبانی میگه بلکه همه چوبان همه تصمیم گیرن و اختیار کنن یعنی اصلا یه شکل جدیدی رو میاد و ترسیم میکنه و باز من انتظارشون نداشتم که به تونجا که تونستم آماده کردم به یه یه جا دیگه امامخونی میفرمویم که حالا زیاد گفتم من پیدا نکردم ما حق نداریم خدای تبارک و تعلق با ما حق نداده است پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بعد میگه که اونجایی که ما یه چیزی رو میخوایم که مردم انجام بدن چیه پیدا نکرده ما. میگه این است که خواهشه یک خادم خواهش متواضعه یک خادم از ملت است. اینو یعنی داره تو فیشش میگه. من دیگه من الان پیدا نکردم. اون تا این نکته که از تاریکان موندی خیلی نکتهه. به جا و درست بود که ما هنوز نیومدیم اساس مردم صادقیه دینی حالا چه با این نگاه چه با برنامه فکری که از داری تخصصیش رو داری بیایم و اینو امتدادش بدیم یعنی یک مشارکتی بیاریم یون کرانی و بر اساس مردم سالاری بشینیم. یا یک روالی رو بچینم منم من قضیه هم هم ورود نکردم من فعلا اون تمرکزی که دارم این است که ببینم این قرائت از مردم سالاری دینی هم ابعاد فکری داره هم ابعاد کلامی داره هم ابعاد اخلاقی و معنوی و عرفانی داره و همه اینها با هم می تواند جمع بشه که ما بتوانیم طراحی نظام اجتماعی داشته باشیم طراحی نظام مدنی داشته باشیم و بتوانیم بر اساس مردم سالاری که حاصلش میشه حالا افquad مختلفی داره و های خاص خودش هم داره بیایم و پله پله پل به تعالی برسیم من یه ارزش نداره بسم الله برکنیم صحبت کردیم ان شاءالله که باشه برای پروریش ما پخت همچه این مطال هایی که در این اونها وسای ایدمانه میشه به توصیه توصیح حضرت ها هم دستاد به ارتقاه کرسی ها و کرسای نظر پرتازی و انواع ها توی این حوضه علمیه خیلی تحکیدشون لیچه کتر هست به زیاده که ادامه باشه برای آغازی باشه برای ادامه مبادسه بینیشه خیلی استفاده کردیم خدا نزاری بادایی این خیلی سلامت اگر بحث نه چشم من حالا یک مده اکی تو مقاله هست ما خیلی محدود کار کرده بود خطفت چه بستام خیلی دوت کردیم آقا ردشم خدا حافظ شما خدا